که ما یا پند ببرد اجر 200 بنده که آزاد کند قاصد حضرت سلما که سلامت بادش چه شوادگر به سلام دل دلماشاه امتحان کن که بس گنج مرادت بدهم گر خرابی تو مرا لطف تو آباد یا روان در دل آن خسرو به شیریننداف که به رحمت گذری بر سر فرهاد کن خالیا یا ی عشق توز بنیادم بر تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کند گوهر پاک تو از متحت ما است. تکر مشاته چه با حسن خدا را ره نبردیم به مقصود خودن در شیراز روز که حافظ ره برداد خب، قبل از اینکه بخواین به معنی کردن بیت به بیت قضیه بخار یه نگاه به خود که بکنیم مثل که نشون میده که این جواب یه نام است که مشکین تو روزی که سما یاد کند ببرد عج 200 بندی که آزاد یعنی تو نامه بند نوشتی خیلی هم کار خوبی کردی مثل اینکه 200 بنده آزاد جواب نام هست. حالا بعد با پیشن. خی نام به کیه؟ میشه میشه پرسید که این نامه رو در جواب نامه کی نوشتی یه قرینه کوچولو هست. رهنه بردیم به مقصود خودم در شیراست قررم اون روز که حافظ به برداد کن زیدون می‌کنه بره برداد اما ظاهرا کسی که نامه رو نوشته به حافظ این قضا رو در جواب حسوده باید در برداد هر برداد چی بوده که حافظ میتونست باشید داشته باشه؟ یکی از پاترهان آل جلایر جلایریان به نام سلطان اویس سلطان اویس جلایری در اون روزگار در برداد فرم روا ارز کنم که برای اینکه که برای چیزم نباشه آشنا باشه کاملا عرض کنم که میارم چیزشو یه غزل دیگه داره خود خاجه ارز کنم که در محق سلطان اویس رد شدیم ازش غزل 158 دوش آمد گل وزان خوشتر نباق که در دستت به جز زاقر نبا زمان خوشدلی یا دریا و دریاب که دائم در صدف بوهر نباشد میگه من از جان بنده سلطان اوویس هم. اگر چه یادش از چاکر نبا به تاج آلمارا گش. که خورشید چنین زیبنده افتر نباشد بنابراین سلطان اویس جز ممدوحان حافظ بوده حافظ باش دوستی داشته و اون که بنده میتونم اضافه بکنم این از که این شاهی بوده است بسیار بسیار با استعداد بسیار بسیار هنرمند اهل خط اهل شعر اهل موسیقی اهل زوب و اون روزگار که دود و دم نبوده اما ایشون با افیون هم آشنایی داشته میل می‌فرمودن ظاهره در هر حال آدمی خیلی خیلی برجسته جالبیست و خیلی خیلی با استعداد و ظاهران این مکاتبه بین حافظ سلطان اوویسه که این قزل رو موجب شده و دنبالش حالا دنبالش بعد میرسیم میگه کل که مشکینه تو مشکین برای اینکه مشک سیاهه و قلم هم با مراکب اما خوشبو هم هست دیگه مرکب خوشبو نیست خوشبویش مال عطر معنویه قلم شاه. کلک مشکین یعنی باعث خوشحالی کلک مشکین تو روزی که شما یاد کنت ببره دو 200 بنده که میگه یاد کردن که تو از من معادله اینه که 200 تا بنده آزاد کنم و توجه بفرمایید که یکی از مسائلی که خیلی چیز بوده خیلی به اصطلاح مطرح شده اون روزگاری که ما جوان بودیم و تو این پای علمای کمونیست‌ها و باجیات نمی زدیم ما نه. بعد یه قالبایی هم داشتن که روزگار بردگی بوده و روزگار فیودالیسم بوده و سیزواش بوده و یه قالبایی داشتن تعدیباتی و تصوری که از بردگی داشتن درست بردگی یونان قدیم و قاره اروپا و این حرفا بوده که؟, که بعدش هم دنبالش تا آمریکا و اینا کشیده میشه و اون جزء چیزهای کاملا مشروع بوده عرسوم یعنی میگه اگه برده ها نباشم که پیان زمین ها رو شخ بزن و عملگی کنم چیز با اومان امتان کار نوبت درست کنن، جایی بدن نه بخورم پیش کار و بعد این آدمو رو می گرفتن بعد تو میبستنش به گاون به جای عصر هر چی میگفته آها من خو سازی بلدم من مثلا ابریشم دوزی بلدم من صنعت صنعتی بلدم که ساعت برابر این پول در میاره بمثلین من اون کار بود گش نمی کرده زیر شله بستن به اصل از سنه این روزگار بردگی یونان باستان به این صورت بوده متاسفانه بردگی در اسلام رو هم ویچ وقت تحقیق نکرد دلیلش این است که الان آخونده میگن که آقایم چون برده وجود نداره مطالعه کردن شرایط بردگی و حوال خرید و, و بروشو ندارم احکام برده کار لغوی و موضوعیت نداره موضوعش منکفی است بنابراین نمیخونن؟ اهل تحقیق و افرادی که جامعه شناس و اینا هم مثل اونا که بلد در حالی که مطالعه ای این فتر کتاب های تاهمتی های فقه هست ولی آخوندار نمیخوننش پکولی هم که بلدیستن دخونه این هم جور مونده و مطلب این است که وضعه بردگی در جامعه اسلامی به کلی یعنی از زرد تا پا فرق دارد برده هایی بودن که خودشون رو پاچه هایی رسیدن سبکتکین پدر سلطان محمود به غلامی در بازار پروخته شد خریدارش هم خودش قبلا غلام بابایی بود به نام البتکین البتکین غلام پاچهان سامانی بود کدشته بود نامی سپه ساله رو بچه نداشت یه غلامی خریده بود به نام سبکتکین قاضی شام گلان بود معروف بود به صباکشی دراست و اون فروشنده ها هر روز سرکوبش میزده با اینکه غلامکنی چه اشکال داره کارشون هر روز باید دارن بخورن اگه فروش نره هر روز قیمت زیاد میشه دیگه یعنی باید بابا عجیبش نهار شام بده این بخوره چیکار هم نکنه وایسی تا بفهمونه هر قیمتش رو بالا هی سرکوب به این میزده که مرد کی بمصرف و همش می‌خوره رو دست منم هم تا بالاخره التاکین می‌خرهش و این مرد خیلی قابل کارآمد حسابی بوده به نحوی که تمام کارهای آل طکین رو به سرعت قبضه می‌کنه و آل طکین دخترش می‌شه بعدم چون بچه ببخشید دخترش مادر چون بچه نداشته وصیت میکنه که بعد از او این به جاش بنشینه. مثل پسرش مینشینه نه واسه 5 سالا میشه و پسرش محمود اولین کسیه که در اسلام اسم سلطان می‌ذره این که این. اما زنا زنا بسیارشون مادر خلفای عباسی کنیز مادر بسیاری از پادشاهان ایران کنیز و بسیاری آدم های فوق برای اینکه غلام و کنیز رو به اون صورت نگون میکردن در اسلام وقتی برده می آوردن یه مقداری از ترکستان به اول خودشون یعنی اون جایی که چشمه بادومی دارن از اونجاها می آوردن اینا پسراشون برای سوارکاری و تیراندازی و سپاهیگری بسیار خوب بودن که میگه معتصم خلیفه عباسی گفت که را هیچ بندهی چون ترک نباشد از جنگ و تین اندازی نا خیلی خیلی خوب بودن حافظم میگه به تنگ چشمی به تنگ چشمی آن ترک لشگری نازم که حمله بر من مسکین یک خبا آورد معمولا علامانشون میگه در سپاهیگری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 اگر یه وقت اطلاعاتی راجب بیدیم می میخواییم در هزار و یک هست اونجا داستان یک کنیزی هست که میگو من ببر بازار بفروش و بگو ده هزار دینار یعنی پنجاه کیلو تلا فیمت شد گفتن چرا بگو که این کنیز من حاضره درباره تمام علوم تمام دانشگاه با علمای درجه اول مباعثه کنیم اگر اونا رو مغلوب کرد این درجه دینار پسید اگر ازشون شکست خورد من مفتیم و میگه صحنه درست کردن و اومدن نشستن و حرف زدن این اونا رو محدود است تو بذاری چط هست الان میتوین بخ این یکی حالا اینو کار ندارم اینا رو از دلتون بخواد یه وقتی کار خیلی خیلی مهمی که اهل تفعی که دربال جام نشیناست اینا میتونه بکنه همین است که از برهداری رو در اسلام و در تاریخ اسلام مطالعه کنه احکامش رو بساطش رو ارزشش رو و کارهایی که میکرد اما یک مسئله مهمتر اینه که اینا این برده ها را جوز خانواده خودشون میدونستن هست سلمان فارسی زرخرین بلاله از اونگوی پیغمبر زرخرین بسیاری از مسلمانان های صدر اول همهشون قلام زرخرین بودن همه آزاد شده بودن و دنبال کار و دخترشون میردن به ایناینا رو بارد خانواده میکردن و به تناسب حیثیت که داشتن و به تناسب استعدادی که داشتن و قابلیت که د می رفتن جلو و اون وقت مسلمونی آمده بوده برای جریمه بسیاری از گناهان کپارش رو آزاد کردن بنده قرار بود. مثلا جرم خیلی ساده ای مثل روز خوردن اگه کسی یه روز ما یه رو میتون همدن روزش رو بخوره، یکی از کارواده یا یک برده آزاد کنیم اگه بتونیم اگر نه یک ماه روی روزه بگیره اگر نه مثلا سی بعده مردم رو تا بده چون مثلا گوش نبود به هر حال انواع و ارسام وجود داشته و تشبیرهای مکرر در مکرر شده و ثوابهای زیاد نوشته شده برای آزاد کردن بند اینجا هم که حافظ میگه که ببرد اج دو بنده که آزاد کردن یعنی خیلی ثواب بزرگی کرد به اندازه ثواب آزاد کردن دیویست دو بنده سلما قاصد حضرت سلما که سلامت بادش اولا تو این بهت نگاه کنید که سه تا سلام و سلامت اینا این همدیگه هست و این به هماهنگی و زیبایی شیر چقدر کمک می قاصد حضرت سلما که سلامت بادش چه شود گرب سلامی دل ما شاد سلما به قول عربا اسم عروس شعره عروس شعر یعنی اسم زن و معشوقهی که معمولا شعرهای عرب به عنوان معشوقه خودشون اسمی بردن یکی از اینا سلماست یکی سعدا مثل سعدی می نمیسن سعدا می خوند. و دو دیگری ام اوفا اسم عروس, عروس شد سلمان یکی از اسمهای اسم معشوقه مثل لیلی مثل ازرا مثل شیرین و همثال اینا در عربی هم در ادب عرب سلمان این میگه قاصد حضرتم به معنی مجلسی اینو گفتم وردم وقتی که میگن حضرت امام حسین معنیش اینه که ما که خودمون قابل نیستیم با امام حسین حرف بزنیم که ما در مجلس ایشون عرضمون می‌کنیم که حضرت ونی مجلسه همچنین که جناب به ونی آستانه دره وقتی میگه به جناب فلان عرض کردم یعنی به خودشون که نمیتونم بگم عرایزم به آستانه درش کردم یه قاصد از مجلس سلمه آمده خودش که بالاتر از اینه که قاصد برسه قاصد حضرت سلمه اون که سلامت بادهش هم جمله دعایی است. که انشاءالله سلامت باشه چه شود گرب سلامی دل ما شاهات کند ای کاش البته باز اشارش به پیک پادشاهی که از اونجا آمده میگه چه میشه, میشه؟ یادی از ما بود و دنبالش هم باز همین همش تغاظای محبت و اظهار لطف و انایت پادشاهه باز دنبالش امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهم در گر خرابی چون مرا تو آباد کنم. میدونید که معروفه میگن گنج در ویران است. اونی که بسیار شد ولی قصه گنج در ویرانه این نیست که مردم گنج رو در خراب چار خیر. ارز کنم که مردم تو خونه هاشون اون وقتای که بانک و حساب و کتاب نب بانک سوئیس که نبوده حالان که هست هزار رو آفت دارون گرفتاری داره ولی چیزه میکردن تو کوزه و چالش میکردن جای مطمئنی تو خونه‌شون شون قیام میگه که زان پیش که بر سر از آرند یعنی مرد زان پیش که بر سر از آرند فرمای کتاب باده گلگون هارم تو زر نه یه قافل نادان که را در خاک نهند و باز بیرون هارم میگه وقتی گوشتن تو خاک تموم شد زر منتها نمیپوسه. زر هیچ جور خراب نیست. اینو میذاشتن چال میکردن برای اینکه دز نزنه کسی نبره جای مطبعه نیباشه بعد یه دفعه مثلا حمله میشده میودن شهر میزادن خراب داغ میشده همه افراد می‌کشتم قلق وام می‌کرد این خونه هم ویرانه می‌شد تمام می‌رفت اصلا یه تل خاک می‌شده الان در کرموشا و اینا اطراف کرموشا که میزید از راه کرموشا تا قصر شیرین که برید یه نظری تپه از اونجا که پیداست که این تپه ها تپه طبیعی نیست کسی هم که خاک دستی نمیاره بیزیک این ساختمونه می‌خوردن انقدر بارون و باد و اینا بالیده شده یه تعلیق این باید حفاری بشه یعنی به قاعده قواعد باستان شناسی اینا رو پیدا کنن که این چی بودش تو دهن کار که میکنن که گاهی آثارش دیدین عکساش رو دیدین گزارش باستان شناسی یه چیزایی هم اونجا پیدا می‌شد از جمله کوزه ای که پرتوش گشته بودن و گذاشته بودن همونجوری که مشکول حفاری من پیدا می‌شد بنابراین این که میگن گنج در ویرانه است گنج تو خونه بوده بعد خونه تبدیل شده ویرانه گنج اونجا مونده و به هر حال تصبر گنج معمولاً در زبان فارسی با تصبر ویرانه و با تصبر خرابه تواند امتحان کلمه امتحان از مهنت دید تحانه معنی آزمایش یعنی به زحمت انداختن یک کسی رو در برابر یک کار سختی قرار بزن؟ ببینن که میتونه انجام بذارن. این امتحان دیگه امتحان کن که بسی بسی قیل کسرت یعنی بسیار امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهن گنج زر اینجا نیست گنج مراد اگر, اگر لطف تو آدمی آدم خرابی یعنی من آباد بکنه خداوند به مرادش میرسونه امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهن گر خرافی چون مرا لطف تو آباد کن آراب در دل آن خسروب شیرین داد که به رحمت گذری و از سر فرهاد کنند اولا خسروب شیرین و فرهاد آوردید دوم اینکه که شیرین گفته خسروب شیرین من. یکیش یعنی خسروب شوهر شیرین. یکی یکیم یعنی خسروب شیرین صفت و شیرین گفتار و شیرین روش در هر حال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 اون آدم درسته که وقتی یه چیزی به ذهنش میاد، نظایر اون هم به ذهنش میاد. هر این حال وقتی یه چیزی به ذهنش میاد، عکسش هم فراهم میشه. از تاریکی به روشنایی منتقل میشه، از روشنایی به تاریکی، از زشتی به زیبایی، از زیبایی به زشتی. بنابراین اگه دو تا مفهوم متضاد رو هم با هم بیارن، همین احساس زیبایی هم به آدم دست. ولی در مورد دوم اسم این صنعت میشه تضاد، مراعات نظیر و تضاد. خراب و آباد گر خرابی چون مرا تو آباد کند خراب و آباد تضاده حال یا اشوه در دنیا آدم بر اشوه به معنی فریبه فقط پور زدن لوندی و دلبری که محسوس بانوان زیباست اون کرشمست اشوه به معنی فریبه به همین دلیل برای غیر زنانه زنانم به کار میره حافظ داره بانگ گای چه صدا آب زد؟ اشبه مخر سامری کیست که دست از گردده ایضا دارد. اشوه مخر یعنی گول میخواد گولت نکن میخواد بول بزنه قبول نکن. اشوه اش به تو یعنی فری بهش. اول دوم اینکه این کلمه حالا که به معنی اکنون داریم به کار میبریم میش توجه کردیم که توی چ سعدی یا حافظ یا اینا هیچ و حالا نیست ید. خیلی شده که نیست، ما توجه نیم. قضاوت و رضایت، قضاست و رضا برای اینکه قضاوت و رضایت هم وجود نداشت نموان ایرونی ها باید این مساعده رو جل گردم برشوند اصل عربی کلمه قضاست و رضاست بنابراین نارضایتی غلط نارضاییه مثند قضاوت مثل مثند قضاوت حالا نداریم تو دو سعدی حافظ حالا نداریم حالیا داریم یکی هم نیست که خیال کنید که حالا این تصادتیه حالیا مثلت وقت در آن می بینم که کشم رقص به میخانه و خوش بنشیم حالیا یعنی اکنون کم کم مخفف شده شده حالا حالا صورت مخفف شده آلیا یعنی فعلا یعنی عقل حالیا اش پایه عشق تو ز بنیادم ور تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد میگه فعلا که گول بری به عشق تو بنیاد مر کن تا ببینیم بعد از اثر عقل و حکمت چه پایه‌ای بذاری تا دگر باره حکیمانه چه بنیاد کنن آدم میگه تو به ستایش من احتیاج ندید به هواره پاک تو از متحت ما مستخنی گوهر اصطلاح فلسفی اینجا به معنی ذاتی در فلسفه گوهر یا جوهر عبارت هست از چیزی که قائم به ذات خودش باشه گوهره برای خودش هست ما سفیدی گوهر می شما شما هیچی رو تو دنیا نمیتونید بگین, بگین این سفید سفید ندارید یه چیزی باید باشه برخ باشه، گچ باشه، شیر باشه، ماست باشه سفیدی رویه بونه اینو که ارز، پس جوهر، گوهر تو پای خوش وایسده ارز، وجودش قائم وجود جوهره مثل صفات انسان هوش، هوش که نداریم که هوش وجود داره میدونم یه ادهی هوش دارم ولی کو این نمیتونی که در بیر بیگه این قائمه به وجود قائمه فعالیت مرز آدم اینوش کنه عرز بس اینو ذات مثل عرز بله از وزار دستور در دستور به احکام دستوری میشه اسم ذات در اونجا به احکام به احکام گیرامریش توجه دارن اینجا به احکام استدلالی و عقلانیش توجه دارن بلا یکی بله گوهر پاکیتو یعنی ذات ذات پا خره پاکتو از متحت ما مستقنی مستقنی اسم فائل از مصدر استقنا به معنی بیمیازی از همون غنا غنا غنی یعنی گینی فکر مشاته چه با حسن خدا داد کنن مشاته در عربی شونه رو شونه که سرشونه می بهش میگن مشت به همین ترتیب باشین و تا مشت یعنی شونه از این مشاته یعنی شونه کش کسی که ابزار کارش شونه است. با شونه کار نمید یعنی آرایشگر این وقتی کسی حسن خدا داده داره که آرایشگر احتیاج به آرایشگر نداره و فکر آرایشگر کمکی به اون کن برای اینکه خود زیبا هست این چه با حسن خدا داد کند استفام انکاریست یعنی کاری نمی کن و هر پاکتو از متحت ما مستقنیست فکر مشراته چه با حسن خدا داد کند یعنی هیچی با حسن خدا, <تصفيق> از حسن خدا داد خداداد. نده در ضمن حسن خداداد خداداد صفت مفعولی مرخمه اصلش بوده خداداده خداداده دا صفت است با خدا ترکیب میشه میشه صفت مفعولی مرکب دومشه که میبوریم میشه صفت مفعولی مرکب مرخم فکر مشاته چه با حسن خداداده نه نبردیم به مقصود خودم در شیراز راه بردن به معنی رسیدن و فهمیدن و درک کردنه هنوز الان اسپانیا وقتی میخوان بگن فلان چیزی من نمیفهم میگه رانیم برم رانیم برم این نمیفهم بیگه مثلا این کار اینجور بکن میگه من رانیم برم راه نبردین به مقصود خودم در شیراز میگه در شیراز مقصودمون نرست مقصود خودمون ادراک نکرد در نرس گاهی حافظ از همشهریاش دلتنگ میشه و شکایت میکنه ولی بعدم که میره بالا خاص داشت تنگ آب و هوای پارتت پر پرفر او نمیدونم فرصتی دولتی که خیم از این خاک بعد یا راه نبردیم به مصبود خودم درش. ولی میره چیز میره گرد یه از داشت میگن زندان سکندر برای اینکه معروف بوده که اسکندر وقتی آمماده بود در اونجا زندانسان و شیراز رو میگن ملک سلیمان به دلیل اینکه قصسته های و سلیمان با هم آمیخته شده از قدیم الایام و تخت جمشید رو همون بارگاه سلیمان هم می دونستن. بنابراین به دلیل وجود تخت جمشید شیراز می گفتن ملک سلیمان که حافظ می رفتید یه مدت یک کمی کم رفتید مدتی یزد خیلی کم سفر کرد یه دفعه رفتید تا یزد مثلی بغداد هم هیچ وقت نرفته یه سفرم رفت تا لب دریا ازی که جزیره کیش و تنگی هورمون اونجاها برگشته میخواست سوارش بره هند از فان و هیجان دریا اونا رو ترسید و برگشت اون چیزه دمی واقعا به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش در قماک از این بهتر نمی ارزد میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است کلاه دلکش است اما به تعریف سر نمی آرز کنم که یه بارم رفته اونجا برگشته یه بار رفته یزد میگه دلم از بحشت زندان سکندر بگیره. رخت بر بندم و تا ملک سلیمان بروم. بله. ولی اینجا آرزو میکنه دلتنگ بوده از شیراز و شیرازی ها و اینا میگه راه نبردیم به مقصود خودم در شیراز قرنمون روز که حافظ راه بغداد کنه. در ضمن کلمه بغداد رو براتون بگم مرکب از دو قسمت یکی بغ و یکی داد. فارسی باستان به صورت بگر خوبه یعنی بگر یعنی خدا یه فرمولی هست اول بسیاری از کتیبه های فارسی باستان نیایش خدا میگه بگ از رک یا ایمان بومیم ادا خدای بزرگ است اورمزد که این بوم را یعنی این سرزمین را آفرید دنبالش هم جمله‌ای هست کارند بغ یعنی خدا این در فارسی به صورت بق و فق به همون معنی آمده عنوان پادشاهان چین رو بهش میگن فغفور صغفور یعنی پور یعنی پسر خدا برای اینکه پادشاهان چین رو براشون منشه الهی قائل بودن لقبشون هست فغونی یعنی بغفور جا دور کلی سلطنت تا قبل از مشروطه همیشه جنبه الهی داشته یعنی معتقد بودن که ودی الهی است این فعلا. نظریگی پنی شیزار ساله بعد از رونسانس این تفکر عوض شد و فکردن که قبا از ملت و چیز الهی نشد الانم که حکومت اسلامی بازم که حکومت یعنی قدرت پولکرانی بر مردم سرشم الهی داری برحال اونا این بخبور فخبور لقب پاچان چینه و فخبور ما حالا لغت هم فخبور یعنی به سر خدا بغداد بغش یعنی خدا دادش از ریشه دا من الان همین فرمول پارسی باستانی که خوندم میگه بگ از زکا اورمزد دا یا ایمان بومم ادا خدای بزرگ از اهورامزدا که این بوم را ادا یعنی آفرید دا ریشه دا به معنی آفریدن اگر شاهده خیلی خیلی خیلی دمی دستیبه خواهد کلمه خداست خدا بوده خود دا یعنی <تصفيق> وجودی که خودش خودشو آفرید بعد در پرگیر وقتی که حرف آخر کلمه اول و حرف اول کلمه دوم با هم یکی باشه یکیش می افته. خود تا میشه خدا دوست تر میشه دوست تر حتی دو تا شبیر هم دوست دار میشه دوست دار باز خدا یعنی کسی که خودش خودشو آفریده پس بغداد یعنی خدا آفریده داد از میشه دا یعنی خدا آفریده و کلمه دادار به معنی پروردگار هم همید. یعنی آفریده داد هم داد هم به معنی قانونه برای اینکه آفریده قانون قانونگذاره پس برداد اسم اصلی یعنی معنی اصلیش یعنی آفریده خدا یک کلمه دیگر هم هست که اینو بگم که بعدی کمی استراحت کنید کلمه بی ستون بی ستون نه بی داره نه ستون داره <تصفح> اصلش بوده بغستان بغستان استانش پساوند مکانه یعنی جایگاه بغم بغستان یعنی که مقدس جایگاه خدا بغستان شده بهستان و بهستون و وقتی به بی ستون. شاه رابه بود از ساعت صد سال و زهر قدر یک ساعت عمری که در اون داد کند این در نسخه مرم خانداری نیست ولی چون نیست من چیزیش که نمی میگم این ترجمه ی حدیث ترجمه جای حدیث نیست حدیث است که یک ساعت عرض کردن پادشاه از یک عمر نماز خوندن و روزی گرفتن و عبادت کردن دو ساعت من عبادت 70 سال میگه جمله حجشم یعنی داد کردن در یک ساعت بهتر از عبادت هفت ساله اینو حافظ ترجمه کرده این صورت اینجا مرحوم خانلری بله مرحوم خانلری میگه که فقط نسخه مرحوم خرفالی نسخه غزوانی این به تو داره یعنی این غزل یک و دو و 3 4 و پنج و 6 7 و 9 تا نسخه نه تا نسخه از مداره که معنی این غذر رو داشته ولی این بیت غذر یک ساعتی تو یه نسخه تو هم نسخه اصلیه معنی غذبینی یعنیم نسخه خطفالیه خب، بکنه حالا استرازه خب، بچه ها بخونم بهتره بعد هم نمیدونم باید رعبون میکنم سپند اشتا بخونم بله حالا بعد میگم که چکاره با من و فاهده کنم تو خاری کند و از اتبایی نال نی آرد به دل پیغام بی و اون گفتیت پیمانه می با من وفاداری خاداری کند از جان پرسودتو خار دلم نشودت نومی نتون بودت باشد که دلداری کند گفتم گره نشودم جن سوره تا من بودم تا منش فرمودم تا با تو تراری کند از عشق نشنی بود، کند از مستیش زمدی ببود تا ترک تشاری کند چون من گدای دینشان مشکل یاری کند سلطان کجا ایش نهان با رنده باداری کند نان طره پر پیچ و خم سهلش سهلش دگر بینم ستم از بند و دنگید از چه غم که حیاری کند شد دشگر غم بیعدد از بعد میخواهم مدد تا فخر دین عبدالثمت باشد که غم کند با چشم پرنیزنگ او آفظ مکن راهنگ کن چشم مست شنگ او بسیار مکاری کند احسان که برای جلسه بعد بنده خواهش میکنم یکی از دوستان اون نوار شهرام نازری رو مثل این که مثل اینکه پشت اون آتش در افشانش به نظرم این غزل رو خونده بسیار قشنگه من اگه در لس آنجلس بودم که نوارم بود خودم میآوردم ولی من ندیدم اون نوار چیز رو پیدا کنه یکی از دوستان بیارن اینجا که این غزل رو پخش کنیم با اون आवाजی که خونده گوش کنیم و لذت این اول دوم اینکه از عجایب اینه که بنده آمدم نشستم شهست طفل مقاله رو حافظ و این و اون سنجیدم به فیال خودم فکر کردمم هم همه احتلاف رو و یادداشت کنم و یاد داشتم. کردم سه چهار ماه فرق الان که من همینجه نگام کنم چون در حافظه داشتن این غزلو هیچ اصلا ندیده بودم توی نسخه های دیگه از که جان فرق بود از او کام دلم کام دلم نکشید نومی گاهی که دل دال کنم تو واسه خاناری از باور دلم من اصلا ندیدم باز اون چیز دیگه اش زامطوره پورتچوخم سهل است